اللهم انت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما و يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله و وبركات السلام على الائمه الهادين المهديين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 السلام عل الحسن ابن علی بن زکی الاस्करी السلام عل الحجت ابن الحسن القائم خب بحث در این چند شب جمعه اخیر در رابطه با روایت امام اسکری علیه السلام در خصوص زیارت بود عرض کردم که امام اسکری علیه السلام فرمودن یکی از پنج نشانه شیعه بودن شیعیان ما توجه به زیارت اربعین است با توجه به این فرموده امام اصل بحث زیارت رو گفتیم با هم پی بگیریم زیارت چه تأثیری میتواند داشته باشد آداب زیارت محتوای زیارت که از معصومین رسیده است دلیل مخالفت وحابیون با زیارت ما فقط یک قسمتش رو با هم بحث کردیم و داریم ادامه میدیم. وارد محتوای زیاراتی که از معصومین رسیده که اصلا نشدیم. زیارت آشورا را آدم بیاد محتواشو بحث بکنه. زیارت امین الله رو، زیارت جامعه رو، زیارت اربعین که مخصوصا وارد شده، بحث‌های مفصل و عمیقی داره. بسیاری از بزرگان در طول تاریخ تشیع و این زحمات رو کشیدهن آثار خوبی رو هم باقی گذاشتن در این رابطه که اون بحث است. اما این قسمت رو فقط با همدیگه بحث کردیم که اگر زیارت به معنی فارسیش بگیریم دیدار همینطوری که ما در عرف معاشرت انسانیمون در رفت آمدهامون به دیدار همدیگه می رویم این دیدار میتواند مفید باشد میتواند مذر. چون در دیدار یا به تعبیر عربی زیارت یک زائر داریم دیدار کننده یک مزور داریم زیارت شونده یک زیارت داریم دیدار یک هرچه زیارت شونده بزرگتر عظیمتر برجستتر از فضائل و مناقب با ارزش انسانی شخصیت بشری بیشتر برخوردار باشد طبیعتا دیدار با او ارزش بیشتری پیدا می‌کند. اما این به شرطها و شروطها اینجا مطرح میشه به این معنی، اگر زیارت شونده حالا فعلا در همین زیارتهای معمولی دیدار معمولی ارز کنم ما میخواییم به دیدار یک فردی بریم که اون فرد از نظر علمی خیلی عالمه از نظر اخلاقی خیلی سطح بالا قرار گرفته از نظر شخصیت انسانی خیلی رشد یافته شخصیت برجسته ای داره خب طبیعتا اگر ما بخواهیم و توجه داشته باشیم که این خواستن و توجه را الان عرض میکنم که در زیارت نسبت به معصومین علیهم السلام چه عنوانی بش دادن اگر ما بخواهیم و شرایطش رو داشته باشیم وقتی به دیدن یک همچو شخصیت هایی می رویم امکان اینکه تأثیر بهتر بپذیریم به نیست سوالی بکنیم توجهی به شخصیت اون فرد داشته باشیم تاثیر معنوی و روحی از او به فزیری. اما در صورتی که بدانیم به دیدار کی داریم میریم و بفهمیم که لازمه بهرهمندی از شخصیت او چیست ما چکار باید بکنیم که از شخصیت او مند بشیم حالا در زیارتی که در دین مطرح شده در حیات و بعد از حیات ظاهری در حیات اگر کسی بخواد به دیدار پیغمبر بره کسی به دیدار امیر یا هر یکی از معصومین بره با توجه به این است که یک بداند به دیدار کی داره میره یعنی معرفت نسبت به مقام مزور این خودش یکی از اصوله همونطوری که اگر من به دیدن یک عالمی میروم نشناسم او عالم در چه رشته است. و نسبت به این علم چقدر میتواند تأثیر گذار باشه؟ و من اگر بخوام از علم او استفاده کنم باید چه سوالاتی بپرسم؟ خب من میرم مثل اینکه دیدن یه انسان عادی دیگرم رفتم طبیعتا اثری نمیپذیرم ولی اگر کسی میخواد به دیدن زیارت پیغمبر یا امه حدا علیه سلام برود ابتدا فقط با این اشاره عرض میکنم چون بحثا شده و در موارد دیگر ما اینگونه مطالب رو با هم داشته ایم. مجمل عرض کنم این عنوان رو که هم قبلا به لطف خدا با توجه به آیات قرآن روایات معصومین ادله مفصل فلسفی و ارفانی به اثبات رسیده. و اگر بازم بخوایم این بحثا رو به اثبات برسونیم بازم دلایلی داریم که به اثبات برسونیم اون چیه؟ در یه عبارت میگم آقا معصومین علیهم مسلام همه کاره دستگاه خدا دیمان لغت دیگه نه اینم از کجای گرفتم؟ عرض کردم قبلا عدلش گفته شده، عنوانشو دارم میگم وقتی مرحوم حاجی میرزلی آقای شیرازی اون مرد با اون عظمت میگه با اده ای از علمای بزرگ اصفهان 670 سال قبل به زیارت ابی عبدالله مشرف شدیم در صحن ابی عبدالله رو به حرم حضرت ایستاده بودیم بین علما بحث شد که این دفعه کدوم زیارت رو بخونیم یکی گفت جامعه رو بخونیم یکی گفت امینالله رو بخونیم یکی زیارت مخصوصه حضرت رو همینجور که بحث میکردند، گفت یه فردی که ظاهرا روستایی بی سوادم بود از زواهر امر پیدا بود اومد از جلو ما رد بشه رو به ذریح ایستاد پشت به ما گفت السلام و که یا همه همکاره‌ی دستگاه خدا و رحمت الله و برکاتو اینو گفت و رد شد میگن حاجی میرزایی آقا قش کرد چون اون میفهمی حرف یعنی چی وقتی به خوش اومد گفت خدا اینو معمور کرده بود که به من توجه بده آقا ما در زیارت توجه داشته باشیم به زیارت کی داریم میریم همینطوری که در دیدار گفتم زیارت ترجمه فارسیش میشه دیدار ما تو فارسی آقا به دیدار کی داریم میریم یه وقت می دیدن یه انسانی ممکن است این انسان کسی باشه در سطح بسیار عالی ولی من ندونم راجب شیخ بهایی نقل میکنن. کنن خب شیخ بهایی است که حوزه های علمیه رائج زمانش رو رفته و داخل حوزه منده و بحث کرده چهل سال شهرهای مختلف رو حوزههای مختلف رو گشته اساتید مختلف رو دیده از لبنان و ایران و سوریه و عراق و عربستان و بلاد مختلف اسلامی زمان خودش 400 سال قبل و از نظر عملی هم زیر نظر اساتید بزرگی سیر و سلوک عملی طی کرده یه رجل حساب شده میگه یه وقتی توی خیابون زمستان سرد یه پین دوز دیدم مثلواکسی های ما کنار خیابون نشسته یک ظرفی رو یه مقدار زغال توش ریخته آتش روشن کرده دستشو رو میگیره یه کمی گرم میکنه بعد با این این جوال دوزش نمیدونم چیه کفش دوزیش مشغول پین دوزیه. وقل دستش نشستم یه کمی باهاش حرف زدم دلم براش سوخت. این های کفاشی که میکوبند اینو برداشتم حالت فلزی داشت با علمی که داشتم با اون قدرتی که من داشتم تبدیل به طلا کردم گذاشتم جلوش که بفروشه و از مالی شواز بشه یه نگاهی کرد گفت شیخ چه کار کردی گفتم ساکت به کسی نگبه گفت نمی‌خوام مگه شما در فقه نمیگی تصرف در مال دیگران بی اذن او جایز نیست من اجازه دادم مال منو تبدیل به طلا کنی گفتم نه کوخبرش گفت کردن من دیگه بلد نبودم برگردونم گفتم دیگه قدرت ندارم برگردونم گفت پس برای چی تصرف کردی من که راضی نبودم بده خودم گرفت برگردون گذاشت سر جاش یقهشو گرفتم گفتم بعد برای من کلاس بگذاری گاهی آدم نمیدونه با کی نشسته با کی مواجهه هر بیشه گمان مبر که خالی است یا خالی است اگه خالی بخونیم بعد پیسه بخونیم پیسه این چیزایی رو میگن که خزه‌هایی که به تنه درخت میچسبه هر پیسه گمان مبرک خالیست این خیال نکن خاله شاید که پلنگ خفته باشد شاید یا هر بیشه گمان مبرک است، شاید که پلنگ خفته باشد یه وقت نمیدونیم با کی مواجهیم این یه بحثی یه وقت بنده دارم میرم به دیدار کسی اولین شرط مندی از این دیدار این است که معرفت همون نسبت به اون دیدار شونده بالا ببرم کیه در چه سطحه؟ حالا زیارت معصومین علیهم مسلام در حیات ظاهریشون. اینا کیان؟ اینها نماینده خدا. اینا خلیفه الهی اینها اینا برجستگان عالم وجودن اینها اینا برگزیدگان خدایی که طبق این آیه شریفه که سریع میخوام ردشم بحثم این نیست. انی فل فلعرز خلیفه خلیفت الله. خب خلیفه خدا یعنی چی؟ مگه خدا مکان داره که پاشیه که بیاد سر جاش بشینه؟ مگه خدا رئیس یه اداره است که این جانشین معاونه یک اداره یا قائم مقام مسئول یک وزارتخونه ی اداره قائم مقام اوست که کار او رو این انجام بده؟ خلیفت الله یعنی به ازن الله یکی از خلق الله به مقامی از قربه به الله رسیده است که به اذن الله کار الله را برای خلق الله انجام میداد. این معنای آیه قرآنه وگرنه وقتی این آیه را میخواید چی معنی کنید؟ اینی جائلون فلعرز خلیفه من میخوام خلیفه قرار بدم خلیفه قرار بدم یعنی چی؟ یعنی از میان خلق الله برجسته به ازن الله در اثر قرب به الله مقامی پیدا می کند که کار الله را برای خلق الله انجام می دهند. خب حالا ما می به زیارت خلیفت الله برویم خب انسان اگه بفهمه با کی داره منشینه خب خلیفت الله به ازن الله هر کاری رو می انجام بده اما بحثی که داشتن وحابیون و میخواستن الغای شبه کنن چی بود؟ اونا میگفتن اگر اینا خلیفه الله هم هستن در حیات ظاهریشونه حالا که مردن از دنیا رفتن شما میدید کنار قبرشون اینا که دیگه موجودیت اینچنانی ندارن خب دو جلسه اشاره کردم جلسه قبر مخصوصا یه مقدار بحث شاید عمقی فلسفی هم شد اگر کسی مرگ را بشناسد طبق آیات قرآن مگر توفی نفس نیست فوت نفس که نیست توفی نفسه توفی نفس توفی به وسیله کی؟ الله یتوفی الانفس یا معمورین الله حالا که الله یا معمورین الله توفی نفس میکنن نفس بعد از توفی نفس کجا میره؟ در عالم برزخ اند الله نفس در عالم برزخ احاطش بر خلق الله از نفس مقیده به بدن بیشتره یا کمتره تازه بیشتره حتی نفس مؤمن تا چه برسه نفس معصوم نفس یک مؤمن آقا اینا من دیگه نمیخوام ادامه بدم وگرنه بحث بسیار گسترده ایه نفس یک مؤمن در عالم دنیایی به چه صورت الان در هجاب مادیس هجاب چهره جان می شود غبار تنم خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم سقرات رو بارها ارز کردم در جمع عزیزان وقتی به سقرات گفتن محکوم شدی جام شوکران رو باید بنوشی، میخوان تو رو بکشن، شاگرداد دورش جمع شدن و گریه می‌کردن، سقراط میگفت چرا گریه میکنی؟ گفت تو رو می‌خوان بکشن. گفت منو نمیکشن بعد این تعبیر رو به کار برد. گفت من خمم و آب. با مرگ خم را می‌شکنن، آب رو که از بین نمیبرن. تشبیه کرده برای اینا. یعنی اگر آب در خمر رو در نظر بگیرید خم رو بشکنن آب داخل خم فانی میشه یا از این ظرف به جای دیگه میره خب آب آبی بودن خودش داره و لذا این تعبیر بسیار قشنگ رو به سقرات نسبت میدن ببینید آدمهایی که درس خونده باشن زحمت کشیده باشن حرفشون ارزش داره میگه ما زندگی نمیکنیم که بمیریم ما میمیریم تا زندگی کنیم چقدر حرف عمیقه؟ چهر حرف قشنگه اصلش از مولاست با اون تعبیر قشنگ نهجل بلاقهی که خلقتم للبغا لا للفنا ولکن من دارن الادارن تنتقلون شما خلق شدید برای ابدیت برای بقا شما آفریده نشدید برای فناب و نابود شدن ولی از یه مرحله به مرحله دیگه میرید مرحله دنیا مرحله در حجاب ماده است مرحله برزخ از ماده خارج شدنه و به غالب مثالی تعلق پیدا کردنه مرحله قیامت نفس با اون تعالی ارزندش جسم قیامتی رو پیدا میکنه با اینکه جسم قیامت هست ماده هست ولی این روایات رو چی تفسیر میکنید در قیامت خوردن هست دفن نیست روایت امام صادق علیه السلامه. خوردن هست دفن نیست یعنی یک درجه بالاتر بله ماده هم هست معاد جسمانی هم هست حالا پس مرک جدایی نفس از بدن است یعنی آزادی بیشتر پیدا کردنه حالا اگر آزادی بیشتر پیدا کردنه شما واقعا بتوانید با این نفس ارتباط برقرار کنید اگر بتوانید مزافن بر اینکه این مزافن بر اینکه رو دقت بفرمایید گاهی انسان به زیارت می روید به قصد استفاده از اون مذور این ظرفیت میخواد. اگر مثلا شما به دیدار یک استاد فیزیکی میرید که درس او فقط به درد شاگردهای دوره دکترا میخوره حالا اگر چهارتا شاگرد ابتدایی هم با من اومد در محظر او استفاده علمی نمی کنه ممکنه بعضی ارتباطشون با انفاس قدسیه معصومین علیهم السلام چه در زمان حیات چه بعد از حیات در آن حدی نباشد که بتوانند بهره تعالی علمی پیدا کنند نه اینکه دهنده ناقص است گیرنده نقص داره یه فرقی بین این دهنده و بقیه است اون چیه اینا دهنده این. اینا اععا کننده ای هستن معطین به اذن الله بر مبنای مقام خلیفه اللهی میتونن ظرفیت رو تغییر بدن ظرفیت رو میتونن تغییر بدن چرا چون ولایت تکبینی دارن مربیانی که ولایت تکبینی ندارن میگن شما استعدادتون رو ما بشناسیم کشف کنیم شاید بتوانیم بروز بدیم ولی اونی که خلیفت الله است یعنی کار خدایی میخواد بکنه میگه نه اینکه استعداد شما را بشناسم تغییر بدم رشد بدم من میتونم در شما ایجاد استعداد کنم به یکی نظر مثل وجود کیمیا کند تا یارک را خواهد و میلش به که باشد داره کاروان عبی عبدالله از مکه به سمت کوفه کربلا حرکت میکنه یه ادهی توی مزرعه توی مسیر مشغول کارن یه جوون کم سن سالی هم با پدر و مادرش تو مزرعهش کار میکنن مزرعهشون با اون جاده ای که اینا دارن رد میشن یه کمی فاصله داره سر برداشتن با تعجب چطور زائران مکه زود برگشتن زوده بنا نبوده که این موقع بیان پدر به پسر میگه برو مثلا فرض کنه کیلومتر با جاده فاصله دارن برو کنار خیابون ببین اینا کی ان چرا زود از مکه برگشتن چه خبر شده پسر دوید اومد کنار خیابون ایستاد کاروان داره هم جور میره از این قضیه تاریخی فهمیده میشه که وجود مقدس ابی عبدالله پشت سر همه کاروان بودن هر کی رو برخورد کرد با ادب گفتن از آقا بپرسید پشت سر از آقا بپرسید به احترام حضرت حرف نمی فهمید باید صبر کنه تا نفر آخر نفر آخر که خود ابی عبدالله علیه السلام بود همین که رسید قبل از اینکه جوان لب سخن به سخن آقا سلام کردند این سلام یک ارتباطی بین امام حسین و این جوان شد جوان دل از رد شد همینجور نگاه میکرد اصلا مات و مبهوت شد نتونه سوال کنه حضرت فرمود جوان اومدی بپرسیم ما کی هستیم من حسین پسر فاطمه دارم به سمت کوفه میرم ما رو تهدید کردن چنینه به قول ما هر که دارد داره حوسه بسم الله اگه دلتون میخواد برو به خانوادهتون بگون میخواید بیاید با ما برید جوان مات و مبهوت با نگاه میکنه نمیتونه حرف بزنه نمیتونه قدم برداره. پدر دید کاروان رفتن پسرم کنار خیابون باستاده بر برنمیگرده اومد جلو دید پسر داری گریه میکنه خیال کرد اینا به پسر توهین کردن شمشیرشو برداشت بره جلو پسر به زبان در آمد. بابا ساکت باشین حسین پسر پیغمبر بود دلمو برده گریم برای اینه که چرا اونا برن من نرم اجازه میدی من برم یکی از شهدای کربلا این جوونه یه دیدار یک رابطه دهنده معتی نقص نداره قابلیت گیرنده در این در حیات خب این بعد از حیاتم که نفس آزادتره مگه مشکلی داره مگر اینایی که من دیگه بحثاشو کردم نمیخوام وارد این بحث بشم مگر در رؤیای صادقه ارتباط نفسانی برقرار نمیکنن با عالم نفوس و از اونها استفاده میکنن این یه بحثه که قسمت عمده زیارت این میشه حالا اگر بگن که خب مگر خود خود خب ببینید وقتی میخوان ما رو از این مربی‌ها باز بدارن مثلا کسی نمیخواد آقا جوونای ما دانشمند بشن هی hey بیاد از اساتید بد بگن از کلاس درس بد بگن از کتابخونه رفتن بد بگن هی hey بیان آقای این حرفا چیه از بچگی به ما گفتن علم بهتر است یا ثروت علم ببینید این همه علما مگه حافظم نگفته فلک به مردم نادان دهت زمام مراد تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس آقا ثروت چه کارا میکند که علم باید علمای گوشه اینا همه تلقیناتی که مردم را از رشد علمی باز بدارن حالا اگر بیان ما را از زیارت دیدار شخصیت‌ها بخوان باز بدارن اومدن شکل مذهبی بشت دادن چجوری استادای وحابی بلد بودن به وحابی چی درس بدن چون خود وحابی که عقلشون اینجا ها نمیرسه آدمای خشک جمعودی بیمنطق امین یکی از ظاهرین حج تمتای امسال به من گفت گفت من دیدم که چند تا از این افغانی ها رو گذشتن تو قبرستان بقی این خودکارش رو از جیبش در آورد انداخت طرف قبر ائمه گو اگه میگید اینا کار ازشون برمیادی خودکار بگیرن بدن به من گفت من گفتم بگو خدا بگیره به تو به تو بی بی میده. گو یہ دفعه رنگش باخته شد گو این جوابو دیگه فکر نکرده بود گو حالا تو اگه بگی خدا این رو بگیر به من بده خدا نمیچونه یا ارادش تعلق نمیگیره این کارو بکنه حالا اراده خدا تعلق نگرفت دلیل بر عدم توا این سوالت بچگان است گو عصبانیشو گو اینا رو بیرون کنین اینا رو از اینجا گو اینا که معلومه در چه سطحیان اما اساسیتشون چی بینا یاد دادن مگر خدا به من و شما از رگ گردن نزدیکتر نیست والله و یحول و بین المرء و قلبه نحن اقرب الیه من حبل الورید بله درسته خدا همه کاری عالم وجود مگه نیست بله مبدع المبادی هرچه هست و نیست خدا آست. خب چرا شما میگید که بریم به زیارت اینها خب از خدا بخواید جواب اول چرا شما برای عالم شدن سراغ و اساتید میرید چرا برای دانشمند شدن کتاب میخرید و کلاس میرید چرا برای مداوا سراغ پزشک میرید چرا برای هدایت پیغمبر و واسطه بین خودتون و خدا قرار میدید که خود و خدا قرار داده بابا این نظام الهی است در این عالم که خداوند اون چرا اراده کرده برای این ها در این عالم تحقق بیابد مثلا خدا میخواد رشد گیاه با نور خورشید باشد این شرکه خرشید خدا قرار داده شما خورشید نداشته باشید این نظام منظومه شمسی رو دارید این تابیدن خورشید به کره زمین از بین بره شما این آثاری که در کره زمین دارید خواهید داشت حالا خورشید رو در عرض خدا قرار دادن است یا نظام الهی است که خورشید باید این کار رو بکنه اگر سعدی میگه اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد رودی که حرف درستی همه است یعنی باران در مقابل خدا ارزندان میکند اگر باران نبارد ما رودخونه نداریم رودخونه نداشته باشیم آب نداریم آب نداشته باشیم کشاورزی نداریم چی نداریم چی نداریم پس باران است باران معمور خداست باران خود خدا قرار دادی این کارم از او بر میاد لذا خدا پیغمبر قرار میده خدا امام قرار میده خدا خلیفه قرار میده حالا من دو سه نمونه از قرآن کریم اجازه بدید در این رابطه یک همه شما وقتی مدینه مشرف شدید همین الان با تبلیغات کذایی وحابیت این آیه شریفه به ذریح پیغمبر اون اونجایی که پیغمبر رو زیارت میکنید نوشته شده با فلز اون بالا و با کاشی آیه مبارکه 64 سوره نساء. و ما ارسل نامن رسول الا لیوتا به ازن الله اول متا مطلق بودن رسولان الهی رو بیان میکنه که در بحث اسمت برگزیدگان با هم بحث کردیم رسول خدا متا است. لازمه چیه؟ متا مطلق لازمه معصوم بحث کردیم دیگه کسی معصوم نباشه مطاع مطلق نمی باشه. باشه وما ارسلنا من رسولن هیچ فرستاده خدا نیست بلا استثنا. الا لیتاع به اذن الله خدا این ازن داده خدا این مقرر رو کرده خدا این قانون رو گذاشته این سنت الهیه که رسول الهی باید خصوصیتی داشته باشد که مطاع مطلق بشه ولو انم از زلم و و اگر ای مردم به خودشون ستم کردن بد کردن گناه کردن آلوده بودن جاو کرد اومدن سراغ تو و الله فراللهه وستق لهم رسول لوجد الله توابا رحیما خودشون استغفار کنن، طلب مغفرت کنن، ولی توی پیغمبر برای اونها طلب مغفرت کنی. یعنی پیغمبر رو برای طلب مغفرت بین مردم و خدا واسطه قرار داده یا نه؟ چرا قرآن نمیگه که خب مردم احتیاجی به واسطه ندارن، خدا به اینها از رگ گردن نزدیکتره خودشون استغفار کنن. میگه خودشون باید بکنن. ولی بدانن اگر پیغمبر برایشون استغفار کنه، امید رحمت و بخشش هست. واسطه ارزنده بین اونها و خدا این آیه واسطه بودن پیغمبر رو حتی بر اصلا استغفار مگه معنی بازگشت به سوی خدا توبه بازگشت به سوی خدا نیست تابه یعنی چی؟ این رجع اصلا در صورتی ما میگیم توبه که از خدا بودن رو قبول کردیم حالا از خدا نعوزه بله سر برگردوندیم میخواییم دوباره برگردیم به طرف خدا دقت کنید به این مثال اگر بنده از منزلم اومدم حسینیه از من بپرسید بعد از پایان جلسه حسینیه چه میکنید؟ میگم بر میگردم منزلم. این حرف درسته چون من از منزل اومدم دارم بر میگردم اگر کسی که تا کنون منزل ما نیومده قرار بعد از جلسه با من بیاد منزل ما به او بگن شما بعد از جلسه کجا میری؟ میگه من بر میگردم منزل فلانی یا میگه میرم منزل فلانی چون اصلا اونجا نبوده که برگشتن معنی پیدا کنه تابه یعنی رجعه رجعه مراجعت یعنی ما از خداییم داریم به سوی خدا برمیگردیم انا لله و انا الیه راجعون از خدا بودن یک امر مسلم که بحثش جدا بازگشت به سوی خدا دو جوره یه بازگشت جبریست چه بخوایم چه نخوایم با مرگ ما رو میبرن منطقه ما رو میبرن پیش خدا به رحمت خدا به بهشت خدا یا به غضب خدا یا به جهنم خدا یا به نقاء خدا یا به مقام وصل خدا همونطوری که عرض کردم حتی متقین جلسه قبل آیاتش متقین ان المتقین فی جناتن و نهر درجه ای از تقواست که وقتی میروند به سوی خدا به جنت خدا میروند تو جنات کنار نهر شیر و اما اگر درجه تقوا بالاتر رفت کجا می فی مقعد صدقن اند ملیکن مقتدر. این هر دو به سوی خداست اما او به سوی خدا تقواش در حد جنات و نهر این یکی به سوی خدا فی مقعد صدقن اند ملیکن مقتدر. مقام لقاء رب و اون درجات آلیاتی که مولاتون بلاغه فرمودند درجات متفاصلاتون، متوازلاتون درجات مختلفی با همدیگه فاصله ها داره فضیلت ها برخی درجات بر برخی درجات داره حالا وقتی این انسان داره برمیگرده به سوی خدا یه برگشت جبری است که با مرگ برگشت اختیاری میشه توبه یعنی قبل از اینکه مرگ من برسد بیام فاصلم و با خدا از میان ببرم بگم خدا یا پول منو به طرف خودش برد از تو جدا شدم مقام منو به طرف خودش برد از تو جدا شدم شکم منو به طرف خودش برد از تو جدا شدم پست و موقعیت های اجتماعی منو به طرف خودش برد از تو جدا شدم حالا پشت پا به بقیه بزنم به طرف تو بیام میخوام بیام بر لذا تابه برگشت ای رجع خب اگر بناس من برگردم خب منم و خدا خب به خدا میگم خدا یادارم بر میگردم خدام که از رگ گردن و من نزدیک تره چرا میگه پیغمبر استغفار کنه پیغمبر بخواد که خدا بازگشت اینا رو بپذیره این یک آیه آیه دوم اصلا این در قبل از اسلامم مطرح بوده سوره مبارکه یوسف آیه, 96 و ن... آیه 97 و 98 آیه 97 قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين آیه راجبه بچه های عزت یوسف یعقوب برادران یوسف قضیه فهمید لو رفت و معلوم شد و که چه کردند حالا اینا اومدن سراغ پدر قالو گفتن یا ابانا ای پدر ما استغفر لنا تو برای ما طلب مغفرت کن ذنوبنا انا کن خاطئين ما خطا چرا یعقوب نگفت استغفر الله این شعر من بین شما و خدا واسطه بشم خودتون برید از خدا بخواید برای شما طلب مغفرت کنه آیه بچی میگه غالب صوفه استغفر الله کم ربی انعوه ول غفور رحیم باش سب کنید یه ای آینده این آینده رو در روایات داره منظور چی بود شب جمعه برسه که امید بخشش بیشتره امید رحمت الهی در اون شب بیشتره چرا حضرت یعقوب بنوان یک پیغمبر خدا نفرمود که چرا منو واسطه قرار میدید خدا که واسطه احتیاج نداره خودتون پیشش برید با خدای خودتون حرفتونو بزنید میگه باشه من در یه آینده نه خیلی دور نه هم همین الان یه کمی بعد براتون این استغفار رو میکنم از خدا میخوام شما رو بیامرز اما یه آیه دیگه هم از قرآن بخونم خیلی عجیبه جالبه که این آیه در سوره منافقونه یکی از ویژگی های منافقین اینه خوب دقت کنید سوره منافقون آیه پنج و ازا قیل لهم تعالو یستغفر لکم رسول الله آیات قبلش ببینید اینایی که منافقند، اینایی که بدن، اینایی که آلودن، اینایی که شیطنت میکنن، اینایی که کلکن جلو پیغمبر میان بل غربان بل غربان میگن، پشتر پیغمبر خائنند، میخوان خیانت به حقیقت دین بکنن و ازاقیل لهم، وقتی به اینا گفته میشه، تعالو بیاید به طرف پیغمبر یستغفر لکم رسول الله، پیغمبر برای شما طلب مغفرت کند لب و هم بعدشون میاد سرشون رو برمیگردونن کاری که الا بیا میکنن طبق این آیه نامونافقن آیه قرآن من که نمیگه حالا شاهد دیگه میارم شاید بدتر از اینم باشه چون از نفاق بدتر نداریم دیگه منافق بس فعلا ببینید طبق این آیه شریفه و اذا الله لهم تعالوا وقتی به اینا گفته میشود اینا یعنی منافقین بابا بیایید سراغ پیغمبر یستغفرنکم رسول الله پیغمبر برای شما از خدا طلب عفو کنه پیغمبر واسطه بشه خدا شما رو بیامرزه لو و رؤوسهم یسدون و هم مستکبرون این منیت و تکبرشون کاری کرده که سر بر میگردونن که کی میخوان تغییر کنن پیغمبر رو. ما کسی هستیم او الله واسطه ما احتیاج به واسطه نداریم کاری که کی کرد ابلیس این این کار رو ابلیس کرد یا نکرد؟ چرا خداوند اول خلقت بشر خواست این درس رو به انسانیت بیاموزه انسانی که بناس مقام خلیفت الله داشته باشه آقا جون باید بری مقابلش زانو بزنیم حالا منهای یه بحث عادی بگرد آقا جون انسان که بخواد عالم بشه در مقابل علما باید تواضع داشته باشه انسان اگر... شما میخواید یه هنری رو یاد بگیری خب در مقابل اون استادکارت باید خضو داشته بوشید. من یه وقتی یکی از بازاری رو دیدم که خودش مثلا یلی بود تو بازار تلفنی با یکی از بازاریا ها صحبت میکرد. ماهی انقدر به شما میدم حسرم بیاد اونجا شاگردی کنه شما اینقدر پول بهش بده این شاگردی کنه قدر اسایی و سابکاری و مثلا راز رمز تجارت رو یاد بگیره بتونه کار بکنه بعد به پسرش میگه اون آقا حقوق خوب, خوب میده میخوای بری یه مدت پیش اون کار کنی این فرستاد وقتی فوتو فنی یاد گرفت با حالا بیا بهت سرمایه میدم برو کار بکن آقا هر چیزی رو آدم باید یه تواضع نشون بده تا به جایی برسه به قول حافظ ارادتی بنما سعادتی ببری تا انسان تواضع ز گردن فرازان نکوس گداگر تواضع کند خوی اوست این واقعیتی است که خدا از ابتدای خلقت داره میگه آقا من در بین انسان ها یه افرادی دارم که اون با بقیه قابل مقایسه نیستن لذا ابلیس شش هزار سال عبادت کرده پیشانی پینه بسته تصویه هزاردانه پسپسکون مرتب ذکر میگه حالا منم دیگه با ملائک نشستم یه دفعه خدا میگه یک تازه از را رسیده اومده میگه که و ازغلنا للملائکتوس جدول آدمان فسجدو الا ابلیس ابا رستکبر ای؟ من با این همه نمازی که خوندم با این همه پیشانیم هم پینه بسته چند تا ختم قرآن تا حالا کردم چند بار حج تمتع رفتم چند بار عمره رفتم حالا پاشم بیام در مقابل ای آدمی که تازه از را رسیده خشوع و خضوع کنم انا خیر منهو من از او بالاترم خدا میگه چی؟ انا کر رجیم انا علیک لعنتی الى یومدین چه ابلیس آدم کشته بود؟ ابلیس زنا کرده بود ابلیس شراب خورده بود ابلیس شکار کرد خدا میگه لعنت بر تو برو اولیای الهی رو قبول نداره یعنی همینی دارم منو که وخابیت دارن به خورده من شما میدن که ایت، مگر یکی از رازهای زیارت یکیشون بود که گفتم زائر از مزور بحره میبره دیدار کننده از دیدار شونده کس به فیض میکنه اون که خوشابه حالو اونایی که میکنن اون رابطه رو برقرار میکنن ازی ای... والله من خودم اولین سفر حج تمتو که مشرف شدم خیلی بچه از حالا بودم قبل از انقلاب بود سنی هم نداشتم یه آقایی با ما هم اتاق شد اون موقع دو برابر من سن داشت الانم پیرمردی است که از خونه نمیتونه بیاد بیرون هنوزم باشر ارتباط داریم خودش به من گفت من اصلا اهل تدیینین حرفا نبودم چون پدرم میخواست مکه بره نمیتونست منو جای خودش برساد منم سفرهای خارجی و این اونور زیاد رفته بودم گفتیم یه بارم بریم مکه ببینیم چیه آقا از مدینه از این رو به رو شد الان بیش از و چند سال من ایشونو میشناسم یا آدم متدین معتقدی که فامیلشم عوض کرد. حالا یه وقت یکی تو زیارت خوششابهادش. حالی پیدا می کند به قول عوام سیما متصل میشه. به قول خوا ارتباط عالم نفوس برقرار می شود. همانطوری که من اینجا خوابیدم یکی هم بقل دست من میخوابه او در عالم خواب طبق آیهی که جلسه قبل بحث کردم اللهو یتوفل انفوس هین موتها و من لم يم، و اون کسی که الان بناس هنوز بمونه نمرده این توفی نفس کرده بقل دست من به جهت تهارت نفسانی من خور بلنده نهایتش خواب ببینم خواب میبینم یه معامله کردم چقدر سود اقتصادی کردم یک خوشحالی هم میکنم از خوابم میپرم میگم آخ اینکه خواب بود ای کاش واقعیت داشت اما بقلدسی ارتباط نفسانی با ارواح انبیاب و اولیا برقرار کرده این میپرسه و کسب میکنه اگه نمیشه همینجا تو پرانتز بگم یه سوالی این هفته از من شد یه لحظه تو پرانتز بنده اون جلس ارز کردم شهود نومیه شهود موتیه شهود قیامتیه که اشاره به همین مناسبت داشتم از بنده پرسیدن که مگر قرآن نمیگه که انسانهایی که در این دنیا اعمان در آخرت هم اعمان اینجا اعما به منیه کوریه چشم دل خب چطور شما میگید شهود موتیه و شهود قیامتیه جواب شهود موکیه نه به معنی شهود همه حقایقی که اولیای الهی در آخرت دارن شهود قیامتیه نه به اون معنی که همه حقایق عالم معنا رو در قیامت در میابن. شهود به این معنی آیا کسی که داره جانش قبض روح میشه طبق آیه قرآن متأثر هست که همه حرفا حق بود چرا گوش نکردن؟ این قرآن میگه یا نمیگه؟ این میشن شهود موتیه. چرا قیامت رو میگن یوم الحسره چون طرف میفهمه که این حرفها حق بود چرا من گوش نکردم لذا حسرت میبره این شهود در این حد ولی اون ش... حتی شهود قیامتیه به معنی حقیقت شهود برای همه بهشتیها در یک سطحه نه اونی که در همنشین خلیفی عبادیه با اونی که میگن بیا تو جنات و ما شل زردای بهشت رو بد میدیم هرچی دوست داری بخور اینا در یک سطح اینام ستوبشون فرق میکنه حالا برگردیم به حرفمون الان طرف من بغلس من توی یه او ارتباط نفسانیش با عالم نفوس پاک به گونه ای است که روایت امیر المومنین جلسه قبل که عرض کردم حضرت فرمود وقتی نفس از بدن جدا میشود، بناس بره بلکوت ولی گناه کرده باشه به ملکوت راش نمیدن. الله اکبر چقدری روایت قشنگه نفس وقتی از بدن تو عالم خواب جدا میشه میخواد بره ملکوت ماز بالاییم و بالا میرویم هر کسی که دور موند از اصلخیش بازجویت روزگار و خیش ولی میگه رات نمیدیم تو کاری کردی زنبور اصل از کندو در اومده برای چی اومده؟ شهدگل به مکه برگرده بره تو کندو حالا اومده دم کندو میبینن به جای شهدگل رفته رو فوزولات نشسته میگه برو اینجا رو آلوده نکن راد نمیتیم مگه نیست اینجوری؟ اون معمورین الهی بر در ورود عالم ملکوت میگن این نفس حق وروده اما میفهمه که حق ورود نداره این خودش یه شهوده و حسرت میبره اگه نفهمه حسرت نبره که مثل کسی که احساس درد نداره درد رو در احساس نمیکنه خب درد براش معنا نداره کسی که شهود به این معانی پیدا نکنه که رنج میبره رنجش اینه که ملکوت هست بغندسی من رفت تو ملکوت من تو ملک مندم و گیر افتادم لذا یکی دیگه از اسرار زیارت پس یک ارتباط نفسانی و برخورداری دو تکریم زیارت شونده تعظیم زیارت شونده شما یه وقت به دیدار کسی میرید نه به قصد این که استفاده کنید یه وقت به دیدار کسی میرید نه به قصد این که بهره ببرید به دیدارش میرید که احترام گذاشته باشید اینم یکی از اون ارزشهاست اینم معرفت میخواد میگی این شخصیت خیلی بزرگه ولی ناشناخته مونده آقا بعضی وقتا مثلا بعضی بزرگان چه گذشتا میکردن راجب استاد شیخ انصاری در حوزه نجف میگن استادیشون ایشون شیخ انصاری از دسفول ایران رفت نجف کسی رو نمیشناخت گمنامم بود قیافه ظاهریشم خیلی جلب توجه خب بعضی قیافه عالمانه دارن بعضی ها هرچی هم علم داشته باشن قیافهشون ممکنه نشون نده این قیافه هم نشون نمیداد چشمشم تراخم گرفته بود کسالتی چشمی داشت زوز ظاهریشم جذابیت نداشت کسی نجف تعلیلش استادیشون میگه یه مجلس ترحیمی بود من رفتم از مجلس برگشتم بیام دیدم وقت خیلی نیست برام خونه برگردم گفتم میرم مدرسه میشینم مثلا این ساعت دیگه یه ساعت دیگه قراره شاگردا بیان درس شروع کنم اونجا میشینم تا زمان درس شد اومدم دیدم یه آقای گوشه مدرسه نشست تا 20 تا دورشان داره درس میده شیخ انصاری بوده گوش کردم دیدم خیلی عالی درس میده گفتم فردام بیام ببینم این طلبه ناشناس کیه اینقدر مسلته فردا اومدم دیدم بهتر پس فردا اومدم دیدم بهتر دیدم نه آخی. یه روز والا اتفاقی بشه دو روز اتفاق این معلومه مولاس یه کمی باش بحث کردم دیدم نه پس فردا شاگردا همو بودن بهش گفتم شما تشویش داشته باشی. بالای کرسی درس گفتم ای یوهناس ایشون از من بیشتر میفهمه و غلطه که من درس بدم او بشینه از امروز من میشینم پایین میاد درس شروع میکنه ایمان یعنی این. تکریم علم یعنی این یه وقت انسان وظیفه داره یه کارایی بکنه یکی از فلسفه های زیارت تکریم تعظیم بزرگ داشته رضا خدا به ابلیس میگه باید به با آدم سجده کنی یعنی تکریم شخصیت مقام خلیفت اللهیی که باید قرار بگیره حالا در این رابطه من یک روایت از سنی بخونم چند تا روایت از کامل زیارات ابن قولبید که سراغ کامل زیارات رفتیم از اون کتاب بیشتر استفاده کنیم. کتاب مستدرک صحیحین. دوستان آشنان دیگه. مستدرک صحیح بخاری و صحیح مسلمه. مستدرک یک کتاب میدونید که یعنی چی. مثلا در دنیای ما شیعه ها. مرحوم شیخور را آمولی وسائل و شیعه نوشته. 20. روایاتی رو که از معصومین علیهم السلام در فروعات دین مطرح بوده، وسایل اصول نیست فروعه. از تهارت بگیرید و نماز و روزه و بری تا حج و جهاد و کتاب قضا و غیره، روایات از ائمه برده. ملاکی که در بین روایات اونایی رو که قبول داشته. مثلا شیخ راملی ملاکش این بوده. اگه راوی این, این باشه، اگه این باشه، اگه این باشه من قبول دارم. اگه این بین اینا نباشه قبول ندارم. بعد مرحوم محدث نوری، صاحب کتاب مستدر الوسائل وسائل میگه طبق همین معیاری که شیخور را آمولی نقل کرده این روایت ما معیار داریشون ندیده بوده. پس این را استدراک میکنیم، بهش اضافه میکنیم. مستدرک صحیحین حاکم نیشابوری از علمای برجسته اهل سنت میگه همون مئیاری که بخاری در صحیح خودش داره همون مئیاری که مسلم در صحیح خودش داره طبق اون مئیار این مقدار روایات رو ندیده این روایات هم همون معیار رو داره پس این مستدرک صحیح بخاریه مستدرک صحیح مسلمه لذا مستدرک این دو کتاب رو میگن مستدرک صحیحین کتاب خیلی معروفه در دنیای اهل سنت هم کتاب عظیمیه جلد چهار صفحه پونسد و پنج اگه اقبل مروان یوم فوجد رجلن مروان خب میدونید که اینام چه خانوادهی بودن مروان ابن حکم پسرش عبدالملی مروان که مروان مروانی ها چه کردن خدا میداند که میدونید یه روزی اومد بعد از رحلت پیغمبر خدا و وجد رجلن واز آن وجههو او جبعتهو علالقبر دید دیدین اومده خودش انداخته رو قبر پیغمبر جبهش یا صورتشو رو خاک داره میماله فعخذ مروان به رقبت هی مقال مروان گردن اینه گرفت کشید کیا مخالف بودن از اون موقع کشید اینو که سمقال هل تدریمات هستنه میدی داری چکار میکنی؟ مثل وحابی که الان شما تا میخواید یه زیارت بکنید شلاغ میزنن آق شرک از چه میکنید؟ هل تدریمات هستنه فعقبل علیه فعضا ابو ایوب الانساری ابو عیوب انساری از صحابه لایق پیغمبره چای این سرشو بلند کردید؟ این ابو عیوب ترسی که این صحابه بزرگ جلیل قدر پیغمبر رو من چجوری باشغر کردم؟ ابو عیوب نگاهی به مروانی کرد؟ قاله نم بله میدونم چه کار کردم انما تهجر من نیومدم برای سنگ انما جئت رسول الله من برای پیغمبر اومدم سمعت رسول الله سر رسول الله شنیدم پیغمبر خدا را که میفرمود یقول لا تبکو على دین برای دین گریه نکنید اذا ولیه و اهله اگر ولایت دین رو اهلش گرفته باشه ولکن ابکو على دین اذا غیر اهله گریه کنید بر دین وقتی که غیر اونی که اهلشه ولایت دین رو به عهده گرفته باشه از این حدیث چی میفهمیم؟ چه کسی مخالف زیارت قبر پیغمبره؟ مروانیان که مروان و پیغمبر لن کرده بود چه کسی قبر پیغمبر رو ابو عیوب انصاری بعد وقتی مروان این توی صحیح بخ... مستدرک صحیحه اینه چه کسی اعتراض میکنه مروان چه کسی میگه نه زیارت درسته ابو عیوب بعد چی میفهمیم از این ادامه صحبتش مر... ابو عیوب به مروان میگه ترس در این نیست که حالا من دارم قبر میبوسم یه اشتباهی تو داری میکنی جلوشو بگیرم ولی گریه برای اینه که کیا میخوان دینه به مردم بشناسونن پسی ارزش ها رو میخواید از مردم بگیرید زیارت کلاس درسه زیارت تعظیم مزوره زیارت تجدیل و عظمت بجستگان خداست آقا نزدیکی های کازمین برای ابو هنیفه قبر درست کردن چه گنبد و بارگایی داره هنوزم هست چه تشکیلاتی داره هر چه کردن مردم برن زیارت دیدن نمیگیره بعد اومدن گفتن زیارت شرکه اینا رو مدرک دارم عرض میکنم تو نواره حابیت بنده سی دی که اینجا هست داره کتاب میشه الان هست توش مداره که خوندم براتون آقا وقتی استعمار میبینه جمعیت تو حرم امام رضا سر از می شناسه تو اربعین کربلا 15 میلیون سر از پا بمب بم میذارن اینا نمیترسن تهدید میکنن نمیترسن میگه این نفوذ معنوی رو باید یه جوری گرفت تو اون جریان بم گذاری نماز جمعه مرحوم های حکیم در نجف من یه هفته بعدش نجف بودم همونجا از قول برخی افسرای امریکایی شایع شده بود همم شنیدن گفته بودن این بمبی که کنار دیوار سحن امیرالمؤمنین منفجر شد و این چند نفر کشت این باید علی همه گنبد و به زمین میریخت اینجا یه خبریه با این تعبیر اون افسره گفته بود حرامم اینج یه خبریه چه خبره آقا حریف نیستیم با بم حریف نیستیم با تبلیغات چه کار میکنیم بیام تفکر مردم رو نسبت به زیارت عوض کنیم نه آقا ما از اینجا داد میزنیم به استعمارگران و استثمارگران اساتید بهابیون و خود بهابیون در کره زمین شما هر چه بخواید عشق ما را به ائمه از ما بگیرید هر چه بخواید ارادت ما را نسبت به اولیای دین کم کنید ما عدو خیرگر خدا خواهد بیشتر میدیم مطالعه میکنیم مدرک پیدا میکنیم ما زیارت رو کلاس درس میدانیم ما زیارت رو ارتباط نفسانی با اولیای الهی میدانیم ما زیارت رو تکریم برجستگان میدانیم لذا حالا روایات شیعه رو ببینید عجیبه در کتاب اول از اصول کافی بخونم بد برم کامل و زیارات اصول کافی جلد دوم باب زیارت اخوان حدیث شماره 9 اینا زیارت معصومم نیست میگه شما زیارت اخوان یعنی دیدار بندگان مؤمنتون حالا خانم‌ها نگین اخوان گفتن منظور نه منظور دیداره هم دیگه که میریم انل اب از امام باقر علیه السلام اصول کافی جلد دوم باب زیارت اخوان حدیث شماره 9 انل اب دل مسلم ای عبد مسلمان به درستی که اذا خرج من بیتهی وقتی از خونه خودش خارج میشه زائرن اخاهو لله لا غیره که زیارت کنه برادرش رو به خاطر خدا نه چیز دیگه برم حالا ممکنه دوره بعد ایشون انتخاب بشه به نفع من تموم بشه برم حالا ایشون فلان معامله رو میکنه اینقدر ممکنه گیرم بیاد نه برای خدا بره یک انسانی رو ببینه اذا خرج من بیتیهی زائرا، اخاهو لله لال غیرهی التماس وجه الله درخواستش به خاطر رضای خدا باشه وجه الهی باشه رقبتن فیما ما اندهو مایله که اون چی که پیش خداست به خاطر زیارت بنده او گیرش بیاد و الله عز وجل بهی سبعین الف ملکن یو من خلفه خدا هفتاد هزار ملک را معمور می کند اینه که دا از خونش بیرون رفته بره پشت سرش را برن الا ان اگر جعللا منزل. تا وقتی که برمیگرده به خونش و بهش اینجوری بگن الا تپبت و تابت ل الجنه جننه خوش باد بر تو مبارک باد پاکیزه باد نوش جونت باد این بهرهمندی و همچنین بهرهمندی بهشتی که خواهی داشت. زیارت یک برادر مؤمن. حالا بیایم تو کامل و زیارات باب ثانی حدیث دوازدهم از پیغمبر خدا من بعد وفاتی کسی که بعد از توفی نفسم لذا وفات فوت نه بعد از اون که نفسم از این بدن جدا شد در پیش خدا رفت حالا کسی بخواد به زیارت من بیاد این اون که بدن من دفنه و نفس توجهی به اون بدن داره کم انزارنی فی حیاتی مثل همونی که در حیات ظاهری من منو زیارت کرده و کنتو لهو شهیدن و شافعن یوم القیامه من شاهد بر او آگاه بر او متوجه امور او و همچنین شفی او در فردای قیامت خواهم بود حدیث شنزده باب سانی از کامل و قال رسول الله منظار قبری بعد موتی موتم هم گفتیم قرآن میگه الله و یتوفل انفس اینم موتها یعنی نفس صورت گرفت منزار قبری بعد موتی کسی که مرا زیارت کند بعد از مرگم کان کمن هاجره الیفی حیاتی مثل کسی است که در حیات من با من هجرت کرده فالم تستطيع حالا اگه توان نداره بیاد کنار قبرم زیارتم کنه فباسو الیهب سلام فانه یبلغنی یه سلام از همون راه دور به من بده به من میرسونند پیغمر احتیاج داره ما از راه دور بگیم سلام علیکم رسول الله یا این باعث میشه یک ارتباط ما با اونا برقرار بشه میگه سر حلقه نگه دار تا نگه دارد بارها عرض کردم یک راز بزرگان میگن برای دهن من زیاده یک راز در رمز موفقیت جناب خور و نجات یافتنش اینه که ادب رو نگه داشت حریم و حفظ کرد وقتی امام حسین فرمود تو با نماز بخون من با اطرافیانم گفت نه پشت شما نماز میخونم وقتی امام حسین فرمود سکلت که مک گفت مادر تو حضرت زهراست جوانای عزیز با شما به درده دل کنم خواهرای من برادرای من بزرگترا شما به من یاد بدید من اجازه لید دا از زبان شما به جوانترا بگم نذارید این مو پاره بشه پاره بشه خطرناک نذارید پاره بشه گناه اگه تدابون بیابه پاره میکنه بیتوجهی به دین اگه زیاد بشه پاره میکنه نکنه به جایی برسه که خدایی نکرده به ما بگن شما با ما چی دارید برید یه شاگردی که استاد گوششو میکشه تذکرش میده دل ازش مثلا نشون میده احیانا یه جریمهی براش معین میکنه اینا دلیل برچیه استاد از این شاگرد هنوز ناامید نشده ولی شاگردی که استاد بگه اینو دیگه ولش کنی کاری دلش میخواد بکنه من دیگه با او کاری ندارم ممکنه شاگرد بگه ببین با من هیچ کاری نداره به شما جریمه میده اگر با من نبودش میلی چرا جام مرابش بشکست قیلی یک راز البلا البلا همینه میخواد گوشا رو بکشه تکون بده برگرد بیا گریه کن ناله کن تو مجاله آقا جلسات امام حسین رو دست کم نگیریدا ارتباط با جلسات امام حسین رو قطع نکنید نگید محرم و سفر تموم شد ارتباط زیارت آشوراتونو رو نکنید دعای عهد صبای جمعتون رو قطع نکنید قرآن خوندن مداومتونو رو نکنید این ارتباط رو ارادتی به تا میگه مام حواسمون هست مام نگهتون میداریم نمیداریم برید چون به مو سیده ولی نمیداریم پاره بشه حالا پیغمبر فرمودن نمیتونی از راه دور یعنی واقعا اگه با یه دل شکسته خب هر چیزی بشکند از قیمت میفته الا دل وقتی میشکنه قیمتش بیشتر میشه با یه دل شکسته از راه دور معدب منظم دقیق توجه به این که با کی داری عرف میزنیم و اون بحث ارتباط نفسانی رو در نظر بگیرید که نفس الان احاطه کلی داره و نفس خلیفت الله است اسلام علیکه یا رسول الله ببینیم به کجا میرسه بذارید این قضیه رو بگم گرچه وقت گذشته همه تون شنیدید معروفه گفت حج زیادی رفته بودم کرارن امسالم دیگه همه کارامو آماده کردم و شبیه که بنا بود فردا شرکت کنم برم برای مکه حالا از مدینه است راه خیلی دور نبود ولی با اصبالاق اون زمانم باز خودش یه مقداری مهم بود گفت بعضی بستگان ما خونه ما جمع شده بودن شامم دوره هم بودیم ودا کنیم خدافزی کنیم صبح من را بیفتم برم برای مکه یه وقت بوی کباب از خونه همسایه اومد یکی از بچه های مهمانای ما کباب ب هرچی گفتم به همین غذایی که موجوده بخور خب بچه بود گفت کباب میخوام من گفتم اب نداره همسایه ای ما رو در واسی نداریم. من یه ظرف از غذای خودمون میبرم به همسایه میدم میگم یه کمی از اون کباب بدید ما این بچه بدیم. رفتم و در زدم خانم همسایه اومد پشت در گفتم که از این کبابی کمی میخوام سرش اند پایین متاسثر شد. گفتم خانم من چیز بدی نگفتم دیدن حرف نمیزنه. بعد خلاص مجبور شد گفت این کباب برای شما حرامه. گفتم یعنی چی؟ خو شما مسلمونی منم مسلمونم چطور برای شما گفت هل... گوشت میته من در اثر گرسنگی و فقر هیچی نداشتم آبرود داشتم امروز گفتم تو بیابونه یه تیکه گوشت میته تهیه کردم که این بچه ها از گرسنگی نمیره که من زدم تو سر خودم من مسلمونم یه همسایه من داره گوشت میته میخوره من سفر چندومم دارم میرم اومدم همه پول یه جا بردم دادم به این خانم هیچی هم نگفتم فقط به فامیلا گفتم من امسال سال مکه نمیرم. گفتن چی شد تو هر سال میره؟ گفتم نه حالشون ندارم نمیرم هیچی نگفت. بعضی همسایه ها با بستگان و اینایی که کهعازم مکه بودن اومدن داریم میریم گفتن خواه التماس دا من امسال نمیام. برگشتن اومدن همه گفتن که چرا به ما دروغ گفتی؟ مننا تو رو دیدیم عرفات تو رو دیدیم جمرات تو رو دیدیم کنار مسجد حرام تو رو دیدیم همه او رو اونجا دیدن. و امام علیه السلام فرموده بود امسال چند نفر حجشون مقبوله یکی این آقایی که حج نرفته ولی از دور توجه پیدا می کند لذا پیغمبر میفرماد شما در زیارت معرفت زائر مطرحه یه وقت هست بنده زیارت میرم آقا رسیدم تو حرم امام رضا علیه السلام عزیزان من دیگه این با دنیای علم و دنیای تحصیل و دنیای درس باید به خانواده ها منطدل کنیم به دیگران بگیم جمعیت موج میزنه اینو پهلو میزنه اونو پهلو میزنه روشونه او سوار میشه که یکی از دور میبینه میگه اینا چیکار دارن چون باید ذریح را ببوسن خب شما این کنار واسی دیوارو ببوسی بله ذریع خالیه برو نزدیکم بشو ولی اگر میبینی ازیت بندگان خداست معدب از دور واسه این دیوارو بفوز بیا یه حالی که زیارت اراقی من دیدم که واقعا جالبه همتون آشنایید ده روز را رو 20 روز را رو پنج روز را رو پای پیاده میاد پا تاول زده با اون خستگی میاد تو صحنه نگاهی میکنه لبهی که یا حسین حبیب یا حسین یه دور میزنه میره میگه جا رو برای بقیه نگیرم استاد من خدا بر علو به درجاتش بی افزایت. خب از علمای بی نزیر نجف بود ایشون میگفت پدر ما هفتاد سال هشتاد سال قبل نوت سال قبل با جمعیت اون زمان میگفت پدر من در ایام زیارتی خاص نجف به ما میگفت شماها که در طول سال اینجایی داخل حرم نشید بذارید زائرینی که از راه دور اومدن راحت زیارت کند خودخواهی نیست اینجوری بزنه من باد برم من خای من دیگه آخی من بدبختو نو بزار زیر پا این من بلا سر من تو آورده بیچارمون کرد تو زیارتم من تو نمازم من توی مکه من توی کارهای دیگرم بابا من باید لح بشه بینی و بینکه اینیی و نازعونی فرفع به لطف من البینی این انانیت باید برداشته بشه لذا خالصا لوجه الله خدایا نبی توست، رسول توست، خلیفه توست، انسان برجسته توست، اگر چه نمیتوانم بروم نزدیک ولی از همین جا هر صبح شب میگم السلام علیک یا رسول الله حضرت فرمود او رو به عنوان کسی که در حیات من با من هجرت کرده حساب میکنن روایتی جلسه قبل خوندم بعضی عزیزان سوال کردند با روایت دیگه آلا امشب جوابشو میدم امام عرض کرد زیارت امام حسین در کربلا فرمود مثل زیارت خدا در عرش که توضیحش گذشت. پرسید زیارت یکی از شماها چی؟ فرمود مثل زیارت رسول خداست کامل و زیارت ابن قولبی باب سانی حدیث شماره بیست و یکم زید شحام که اون هفتم روایت از ایشون خوندم. قول تو لبی عبدالله عليه السلام به امام صادق عرض کردم. مال من زار قبر رسول الله. کسی که قبر پیغمبر خدا رو زیارت میکنه چی براشه؟ قاله کم زار الله فیارشه. مثل کسی است که خدا پس مثل اینی که پیغمبر زیارت کنه یعنی مثل اینی که خدا رو زیارت کرده حالا زیارت خدا منظور چیه خدا اونجا نشسته ما میریم اجازه بدی دست شما رو ببوسم تو کجای تا و من چاکر اتم چاره قد دوزم کنم شانه سرد وقت خواب آیم به رویم جایه کرد بس اینه یا زیارت خدا ارتباط نفسانی با عالم الوهیت که برخورداری از اون فیوزات حضرت حق میگه اینو خدا برگزار کرده به بندگانش که خلیفه الهی ها خلیفه الهی ها میتونه کار رو بکنه پس زیارت رو باید با این دیاره. افراط و تفریط هم جمع بشه افراط به این معنی من حتما باید ولو شلوغ است راه نمیدن دیگران اذیت میشن ولو الان ممکنه لازم باشه من این پول صرف کار یه عدی بیچاره بکنم چون تکریم و تعظیم داره صورت میگیره نه خیر من باید برم بقیه حل بدم برم زری رو بوسم بیام این افراط تفرید هم چیه مگه از دور نمیشه یه سلام داد خوب یه سلام میدم دیگه اینم تفرید هم از دور باد سلام بدی هم باد بری نزدیک باید اماکن مذهبی عظمت دشته باشه به کوری چشم دشمنانشون باید اون شیفتگی و عشق پیروان اولیای الهی رو مردم ببینن تصور کنن چون زیارت یکیش ارتباط نفسانی برای رشد زائر نسبت به مزوره یکی هم تکریم زائر برای مزوره هر دو رو باید ما داشته باشیم اما امروز این روایت رو دیدم خدا میدونه انقدر دلم شکست الان یه دفعه یادم افتاد گفتم که چون تا امروز اینو ندیده بودم امروز دیدم داشتم مطالعه می کردم برخورد کردم به این خلیفه دوم داشت نقل می کرد برای یکی از خصیصینش که من کارم به جایی رسیده که حسن ابن علی علیه, علیه ما سلام بر من وارد شد اجازه نشستن ندادم و مدتی او را سرفا نگه داشتم. و عثمان گفت به گله این کار را مگر خلیفه دوم نمی کرد ولی من میکنم به من اعتراض میکنن. گله میکنه چرا به من اعتراض کنی به امام حسن احترام نمیذارید. یعنی این نهمی که مروان میاد به ابو ایوب انصاری میگه چرا داری این کارو میکنی اون خط کارو به کجا میرسونن بالای منبر سب و لعن بر امیرالمؤمنین رو به گونهای نه قبل از سب بگم آقا پیغمبر نسبت به زهرا سلام علیه علیها چه میفرمود شب و روز حریم باید شکسته بشم باید بشکنیم این رو چه کنیم با نقشه حساب شده میایم بین در و دیوار قرار میدیم نه سیلی به صورتشم میزنیم خود ضربه فیزیکی سیلی یه بحثه این جرعت بر حریمه اولیای الهی تاختن این بحثه. لذا بحث بحث فقط یه امر ساده ظاهری برخورد فیزیکی نیست. اگر این بود میگه آقای ما مجتبه علیه و سلام اواخر عمرشون بود. سالها از غضیه نزدیک چهل سال و چند سال چون حضرت 48 ساله بودن شهید شدن. موقع شهادت مادرشون سن باید حدود مثلا 7-8 سال بوده حالا یک سال منده با آخر دو سال منده باخر آخر کهی بوده حدود 4 سال تقریبا با یک کمی اون بعد بر. طرف میگه من یه دفعه تو کوچه مدینه دیدم امام مجتبا رنگ چهرشون تغییر کرد حالشون عوض شد مثل الان به تعبیر من آدمایی که تب و لرز یه دفعه یه تغییر حالتی من به حضرت ترس کردم چی شده پرمودن چشمم به افتاد. یادم نمی که بین کوچه مغیره و خالد و غنفوز به دستور اربابشون چگونه به مادرم حمله میکرده؟ کردن چیانم به فدایت یبن رسول الله اگه الان قبرستان بقی نمی زارن کنن هنوزم با شما درگیری دارم. به جای تکریم کریم اله رسول این گونه تحقیر میخوان بکنن ما از راه دور با دلی شکست عرض می کنیم صلی الله علیک یا ابن رسول الله یا ابا و محمد یا حسن ابن علی ایوه المجتبا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا وستشبعنا و توسلنا بکه الله و قدمنا که بین یده یا جاتنا الله وجیحن لنا اشفلنا الله ولی مگر اینها در این حد اکتفا کردم تا زنده بود برای تحقیر اجازه نمیدیم بنشینن آقا با بدنش هم کاری دارن وقتی تیر از هر طرف آمد امام حسین فرمود جنازه بدنم برادرم رو به طرف بقی ببرید آوردن وقتی خواست بدن رو از تابوت جدا کنه دید با تیرهای تیر دشمنان بدن به تابوت دوخته شده آقا امام حسین بدن برادر رو تو قبر گذاشتن این بند کفن رو باز کردن صورت روی خاک نهادن، اینجا بود که فرمودن. قارت زده کسی نیست که اموال او را به غارت ببرن قارت زده کسی چون منی که برادری مثل ترا اینگونه مظلومانه بر دل خاک می سبارن تشیه جنازه خانمها بیان مکروهه خانمها نبودن تو خونه بودن عباس علیه السلام زودتر از همه از دفن برگشت وقتی وارد خانه شد در دالان منزل زینب پرسید برادرم رو کجا دفن کردید عباس سر بدید بار ناد دست از دلم بردار من زنده باشم بدن پسر فاطمه رو تیر باران کنم اما عباس روز آشورا نبودی در کنار گودال قسلگا زینم از تل زینمی میگه میدید شمشیر زدن با شمشیر میزم لیز دار